بر نیامد از تمنای لبد کامم هنوز بر امید جام لعلت شامم هنوز روز اول رفت دینم در سر زلفین تو تا چه خواهد شد در این سودا سر هنوز ساغیا یک جر ای زن آب آتشگون که من در میان فختگان عشق او خامم آنو از خطا گفتم شبیه زلف تو را مشک ختن میزند هر لحظه تیغی مو برندامم آنو پر تو روی تو تا در خلوتم دید افتاب می‌روَد چون سایه هر دم بر در و بامم آنو نام من رفته است روزی بر لب جانان به سه اهل دل را بوی جان می آید از نامم انون است در عدل داده است ما را ساغی لعل لبد جرعه جامی که من مدبوش آن جامم انون است ای که گفتی جان بده تا باشدت آرام جان جان به غم هایش سپردم نیست آرامم علو در قلم آورد حافظ قصه لعل لبش آب حیوان میرود هر دم زعقلامم علو